ایران بازنگری در تاریخ قلمرو میانی در اسناد اشاره میشه که در مسیر سبهرگی تورج به شمال خاوری می رود. به شمال خاوری. به شمال خاوری می رود. اشاره نمیشه که تورج در شمال خاوری می ماند و ایرج می رود. تورجی که حرکت میکنه به سمت شمال خاوری نه اینکه تورج خواست شمال خاوری باشه تورج بمونه و ایرج برگرده بیا تو فلان. تاریخ ایران ماست تو واقعش میزنم استرویش او. بخش کیش رو یه جور دوره می دونم و دشمنای اونارو رو به هیچ عنوان انسان نمی دونم دشمن اونا تماما اتفاقات طبیعت حالا بعدا سرعتاش میخونیم می خونیم دوره کیانیان که می رسن اینا میشن مردمان و سلسله ها مثلا ایراج نماینده همین ایرانه همین ایرانویجی که ما داریم می در فارسی شده ایرج. ایراج که شما نگاه میکنید میبینید همین ایرش خودش تشکیل میشه از گودر زوک تشکیل میشه از کیکابوس و کشفات که اینا های کاسی ها هستن اینا همه قومن درسته به اسم پدر یا پسر میگن آقا پدرش مثلا اسمش فدام بود پسرش اسمش فدام بود حالا من این همه شواهد میارم که حتی ما در تورات هم همین چیزی داشتیم در یونان هم همین چیزی داشتیم رامش بخشی در اون دوران هولوژ یخ بندان رامش به هر جو گرمتر باشه رو چرا میگه به سوی نیمروز رفتن به سوی آفتاب به سوی جنوب در نیمکره شمالی هرچی به سوی جنوب بری گرمتره دیگه اون موقع صعوبت و سختی درباره سردی بوده میبینیم که احریمن جای سرد شمال درهای دوزخ در شمالن زمحریره به جهنمشون هرچی که سرده براشون بده این داستانی که داره میگه این سرمایی که ما داریم میگه ما پیش از اسوی یخبندان اونجا همچه آب هوایی داشته نه پس از اسوی یخبندان اصلا پس از, از سیخمنده ما تمام سرناداشو میاریم اصلا پس از این زمین رو باست خوشصالی شده به خاطر که آبها بخار نمی‌شدن و این کاهش بارندگی بلا از, از سیخمنده یه سری از زمین اصلاً رفته هم خوشصالی این که ایران بهش نمیدونم رامش بخش نبوده فران نه اصلا چیزی نیست همچنین اتفاقی کاملا افتاده به نام خدا با عرض سلام و و احترام خدمت همیهنان هم گرامی همراهان عزیز قسمت 27 برنامه ایرانویج رو در خدمت شما هستیم مباحث ما همچنان در حوضه رود دایتی آسیای میانه مکان ایرانویج مفهوم جیهون و اون جایی که با عنوان یک مکان برای ایرانویج در استوره و در متون کوهن پارسی و متون کوهن ایرانی و متون حوزه حوزه قلم روی میانی مطرح هستش رو ما دنبال میکنیم در حضور میهمان گرامی و سه کارشناس محترم عزیز جناب آقای سعید کریمی، جناب آقای سرنافی روزی و جناب آقای مهداد ایران مهر هنوز که هنوز هستش ما در مورد مکان ایران به توافق نسبی هم حتی نرسیدیم ولی باز هم مباحث رو ادامه خواهیم داد بر اساس اسناد مختلف، علوم مختلف و همچنین این قربال خواهیم کرد این اسناد رو بر اساس علوم مختلفی چون زبان شناسی، باستان شناسی، دیرین اقلیم شناسی و تمام علومی که لازم هستش برای اینکه فرضیه علمی در حوزه علوم انسانی به اثبات برسه. در این قسمت از جناب آقای کریمی شروع می‌کنیم که تقریبا در میان کارشناسان چیزی هستن که تقریبا تمام اون فرضیه هایی که داشتن در مورد مکان رودودایتی و ایرانویج رو بر اساس تحقیقات و پژوهش‌هایی هایی که خودشون در حوزه زبانشناسی داشتن و اسناد و مداریکی که ارائه کردن تقریبا تکلیف خودشون رو روشن کردند و مشخص کردند و برای فرضیه های خودشون و برای حرف خودشون دلیل دارند و سند دارن و خیلی هم خوب و خیلی هم سفت و محکم و البته بر اساس متد علمی دفاع هم می کنند گرچه حالا مخالف هم هستش و این هم طبیعی هستش و قرار نیست هممون مثل هم دیگه فکر بکنیم و همون مثل هم دیگه اسناد و مباحث تاریخی نگاه بکنیم چرا باقا کردیمی در خدمت شما هستیم باز هم ظاهرا در مورد مسئله ای که فرمودید که این مکان ایرانویج قطعا و بدون شک در خلاصانه بوده و آسیایی میانه هستش، بحث دارید؟ ادامه می‌باشه. شما رو می‌شلاقیم تا اینکه سوالات و شبه هایی که دوستان قرار هست مطرح بکنن و همچنین خود بنده هم ممکن است سوالاتی از شما با داشته باشم و در خدمت شما باشی. به نام خدا و درود فرمان خدمت همه همیهنان هم در سر تسرگیتی. نخست میخوسم ازتون اجازه بگیرم یه سری از کارهای پژوهشی که داره انجام میشه در دانشکده و جاهای دیگه برای اینکه انرژی مثبتی به برنامه داده باشیم نام ببرم. پژوهش در چه موردی؟ در مورد همین اصول شناسی و زبان شناسی دارن کاره خیلی قشنگی انجام میدن. در کجا؟ هم در دانشگاه هم از بیرون از دانشگاه. باشو بکن خالی از وقت. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که دانشگاه زبان شناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی بسیار پویا‌تر داره عمل میکنه. جای بسی خوشحالی داره از اساتید من جس ز خود سپاسگزاری کنم از اساتیده بزرگ این رشته آقای دکتر اسندوس، آقای دکتر ماشین زاده، دکتر گلناز مدرسی و آقای دکتر گروش صفوی و بقیه که حالا من مَذَرت میخوام اسمشون اگه من اینجا فراموش کردمتونم بگم بسیار قدرتمند داره جلو میره مقالات و های بسیار جالبی خواهد برگزار بشه که به امید خدا از مهمان آغاز میشه همه اینا دوستان دانشجویی که تو این زمینه کار کرده بودن مدرک گرفتن الان دارن به صورت آزاد و رایگان آموزش زبان اوستایی میدن آموزش زبان فارسی باستان میدن یعنی خودشون دانش‌آموخته این دانشگاه ها بودن و جالب هم اینجاست که با ما هم داستانن و این رو به این شکل بهشمون قبول ندارن و دیگه چون از خود دانشگاه هم هستن دیگه حرفشون خیلی سنتیش بیشتره درست بعد دوستان خودمون مثلا هستن افرادی که دارن در زمان فارسی سره کار میکنن کار بسیار ای دارن میکنن که حتی فارسی درست کردن را اوی کوروش جندتی یکی از همکلاسیهای خود ما هستش که این کار آغاز کرده و بسیار جالب کار کردن و از کارهای دولتی و قانونیش انجام دادن که خیلی سریع از این کاری که فرهنگستان تا الان انجام میداده بیان واژه‌ای که تازه وارد زبان فارسی میشه رو اینا رو همرو پالایش کنن به زبان فارسی سری در بیارن بسیار هم علمیه هم خودشون باستون زبان باستانی کار کردن خیلی تو این کار چیره دستن و گروه بسیار خوبی دارن بعد اوی دکتر حسن توس در فرهنگستان پنج جلد کتاب دادن بیرون که ریشه شناسی زبان فارسی بی نزیره. پس از صد سال زیر یوغ غربیا بودن همه را سرخورده کرده بود که ایشون با این دلیلی که انجام دادن پنج جلد کتاب دادن در مورد فرنگ ریششناختی زبان فارسی بسیار کارآمد کسایی که میخوان تحقیق کنن ریشه های واجه های آریایی و تو زبان های سومری و اکدی کار کنند و حتی آشوری بنده خودم پایان نامه با راهنمای ایشون می‌خوام آغاز بکنم این کتاب پنجل کتاب بسیار عالیه میتونه دست ما رو باز بکنه تا این همه بهونه می آوردن که اگر آریایی ها تو ایران بودن چرا نام شهرها و واژه هاشون در کتیبه های میان رودان یافت نمیشه این کتاب باعث میشه که ما بتونیم پاسخ همه اینا رو بدیم یعنی دینش رو زبان شناسی ادا خواهد کرد این خواستم بگم که یه خوردهی فضا عوض بشه انرژی مثبتی داده باشیم، امیدواری داده باشیم اینکه بگیم در یک جنبش خیلی خوبی انجام بشه تاسیس و این رشته که بیان جلو یعنی خودشون گونه کار دست بگیرن دیگه زبان شناسی و اصول شناسی به سبک خود ایرانی که همتون که خدمتون عرض کردیم اچ فاکتوری داره آغاز کنند خدمتون عرض کردم که بنده خب از همون اول هم, هم نظرم هم همین بود تا آخر برنامه‌ام همین خواهد بود که ایران بهش از دنده همون آسیایی میانه یا همون خراسان بزرگ هستش. دلیل اینکه دو تا از دلایلی که با شناسی بود خدمتتون عرض کردم. خب ما با بچه ریاضی هم که قول داده بودیم از دانش‌های دیگه هم استفاده کنیم، اومدیم کار کردیم، حتی مباحث فیزیک رو آوردیم. یک که حالا اسطوری که مرس و گاوی اقتداده برسیم همونا رو خدمت شنوندگان عرض خواهیم کرد. و وقتی می‌گیم همه اینا طالم چندین بار شده، گفتیم آقا اینا اولین باری که داره پخش میشه. خب چون صدا ضبط میشه میتون این می ثابت کنیم که ما میگیم اضافه نیست نه. وقتی میگیم اولین بار نخواستیم باره حتما همینطوری هست میتونن دوستان برن پیگیری کنن اومدیم از ریاضیات آمار و احتمالات استفاده کردیم اومدیم از ماتریس ها استفاده کردیم در زبان شناسی کارای بسیار قشنگی داره انجام میشه خب یکی از کارایی که ما انجام دادیم دوباره از ریاضی آمار و احتمال که استفاده کردیم در شناسی و آواش شناسی. من خدمت دوستان کتاب معرفی کردم وایش شناسی و آوا شناسی حالا وایش شناسی یعنی مثلا خودش دنیای بسیار گسترده‌ای داره آوا شناسی پیچیده تره و نیاز دارید کسی که پژوهش رو انجام میدن حتما کتاب‌های دانشگاهی رو بخونن و حتما با اساتید دانشگاه در تماس باشن یعنی نمیتونن خودشون تنهایی بخونن و کاملا متوجه بشن بله با متد علمی دانشگاهی بله حتما اساتید دانشگاه میتونن بیا سر کلاسا بشینن حتما استقبال ازشون خواهد شد اینو مطمئن باشن خب اومدیم آواشناسی کار کردیم شناسی کار کردیم ببینیم مثلا های شمال شرق ایران مثل پراچی مثل یتقی مثل یزگولانی مثل شغنی مثل راشاروی مثل روشانی مثل خوتنی خارزمی زبانهای شمال شرق ایران هست. بله حتی مثلا زبان مشخص یعنی مشخصا مشخصی یک زبان رو داره بله مثلا سغدی بین نظیره ساختی ما روش خیلی تا کتربیم کار میکنیم این واجنامه رو خانم دکتر یه واجنامه ای دادن خانم دکتر بعد از زمان غریب که استاد مسلم از آن ساختیه کتابیشون در تمام جهان رفرنسه یعنی همه جهانیشون میشناسن که بیشتر کار آلمانیا کردن تو این زمینه یعنیشون کاملاً شناخته شده است برای توجه تو این زمینه یازه 1650 واجد داره اون داره هم مر تیم در میاریم مقایسه میکنیم بازوانهای اوریا یہ نخستین که ایناست میشه میذارن این تو این دو یا همون اروپا... دو اروپایی و با سینسریٹ و اوستا ببینیم مثلا چند اندازه این واژه ها میانگینشون مثلا چه واریانسشون چه جوریه کوواریانسشون چه نه اینا حمر بعدن یواشاش اعلام اینا بعد بذاریم تو سایت بچا ببینن بله. گفتنی نیست سری فرمول بگیم شاید شنوندگان خوب متوجه نشن این که ما گفتیم آسیای میانه حتی در زمان صدر اسلام ما چندین بار با سامی ها در ارتباط بودیم یعنی درسته خیلی مقاجعه بوده ولی دانشمند های ما, با رابطه،, بعضی ما ها رابطه خوبی با سامی ها داشتن یعنی ما می‌بینیم از هزاره سهوم اینا داشتن رابطه با سامی. بله سامی ها حتی می‌بینیم زمان حقاملشی هم دارن بله از اسلام هم دارن حتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید یه زمانی هستش که سامی ها میخوان مثلا ایرانی ه میون رپ دادن به سامی و حتی کریم بحث اینجا مطرح هستش این سامی ها سامی ها که شما میفرمایید چه زمانی جدا شدن از قلمرو میانی به عنوان یک هویت مستقل از ایرانی ها من اینو آیا مثلا اصلا ما میتونیم بپذیریم که اصلا و... و اینا کجا ساکن بودند چون خود مکان های جغرافیایی خیلی مهمه این مباحثمون که بخواد تکلیفش روشن شماش خیلی مهمه منظورتون سامی چی هستش و به اضافه اینکه این سامی ها در کدام برهی تاریخی از این قشا جزء قرمای میانی هستند بله کاملا کی از این قرمای میانی جدا شدند چه زمانی و در چه مکانی حالا دقیق که نمیدونیم تعیین کنیم داد در... در چه محدودی مکانی اینها د... ساکن شدند پرسهشو بسیار به جوی فرمودیم خب یک چیزی مسئله ای بود که قدیم هم اومدن عنوان کردن گفتن که تو اسطوره های سامی اونا ایرانی ها رو از فرزندان نوح میدونند ما هم در بندهشت خانم دکتر که خوندن اسامی داش تا رو که ماشون گفتیم تازی نمیگفتیم سامی از گشت نیزداران بعد از نژاد کیومرث میدونستان حتی داریم حتی نژاد زهاک شما میبینید به بسیامک میرسه دقیقاً اینا رازهای بزرگی توشه من عقیده بر این دارم که هزارهای بسیار این چیزی که ما در میگیم هزار سوم پیش از میلاد برای زماشاه خیلی کهنهه ولی برای ژنتیکس خیلی جدیده. جدیده دقیقاً. چون ما دیگه از 3000 سوم 4000 به اونور یه چیزی نداریم برای زبان شناسی بخوایم کار بکنیم. مگر اینکه بیایم مثلا با آواشناسی و واج شناسی به وسیله یه سری قوانینی که مثل قوانین ریاضی هستش با رایانه اینا بیایم برگردیم این عقب. یعنی الان تونسان زبان‌های آریایی یا به قول اینا هندورپایی تو 10000 سال پیش یابی کنن. نشیابی کنن بله یعنی تو 10000 سال... اونم به لطف سانسکریت و اوستا. بله دقیقاً حالا واس مثلا متن‌های مثل لاتینیانام بوده به متن بسیار ارزشمند مزار خون کتیبهای بسیار ارزشمند هیتیها و توخارستان حالا برام میگم چه این دو تا با هم هماهنگی داره تو ده هزار سال تونسانتس بکنن زمان سنجی کنن اینا برن به عقب ما هم عقیده داریم که ممکنه در هزارهای بسیار قبلتر اینها واقعا با هم یه جور یکجا بوده باشن خب برای همین خیلی از ریشه هاشون هست با ما یکیه مثلا ریشه هم اینه من نخصیم باید باید و تو کتاب آقای دکتر دوست هم اومده مثلا ببینید ما در زبان اوستایی به تاوستون میگیم هامین هامین بله الان تو کردی هم داریم بعد مه جز بهش میگن انزادی لبی بله دقیقا ما یه وی در کردی داریم مثل و انگلیسی که استاد بوبای خونده میشه یعنی تا لب به هم خورده میشه بله. یعنی دن... یه وی که دندون بالایی به لب پایینی میخوره و هم داریم که الان تو فارسی فقط همینو داریم ولی در کردی هنوز باقی مونده و بعضی از زمانه بوم ایران وی ای که از تا لب خارج میشه بوبای اینجوری خونده میشه بله. که هاوین هم داریم در کردی به گرما همون مهیی که به وی تبلیش شده جدولش هست من خواستی میان خدمت این همون گرفتن ریشه گرما که از ریشه سامر انگلیسی هم ازونه چون میدونین که های کاملا به هم قابل تبدیل هم. مثل هندو سند این ثابت شده است یعنی این چیزی که قدیم هم همه خودشون گفتن سامر از هامر گرفته شده هامین بده هامین. نه هم که همون ریشه مثل سور و سان خورشید بعد خدمتشون را عرض شد که این گفتن خود هم در های سامی و نیگرما اومده هم در اکدی اومده هم در آشوری اومده و هم در عربی هم یعنی کلمه حمام شما دارینش یا نارون هاویه در قرآن داریم یعنی آتش سوزان که در کردین ها هاوین داریم اینا به ما ثابت میرید همه باید شد که مثلا مثلا آید دکتر جهاد مشکول شاد روان یه همه رو به شک انداخت که اینا واجای وارداتی نیست. hat 2003 پیچ از میلادم براش کمه دکتر محمد جواد مشکور منظورتون اون فداق اسلامی رو نوشته بله. بعد همه رو به شک انداخت که این شانس نیست وارداتی هم نیست چون بالاخره عرب‌ها در گمرز زندگی می‌کردن 100 درصد وژشون یه واژه ذاتیه یعنی وارداتی نمیتونه باشه کسی که تو گمرز زندگی می‌کنه که نمیره واژه گمرز وارداتی داشته باشه اینا همه رو به شک انداخت که آقا اینک اکی با هم در ارتباط بودن ولی خب این ژنتیک تا حالا مثلا ما تا سی و چهار هزار سال که من اطلاع دارم آیستان اگه اگر میدونن بعدا تکمیل کنند ساحت منو ما با عربا نسبتی نداریم آیا این واجه ها پیش از این بوده؟ یک بحث بسیار زیوه شیرینیه باید دنبالش رفت باید ببینیم ژنتیک تو کجا میتونه ما رو یاری کنه ولی اینو که همه به شک انداخته که بسیاری حتی از اون سحرگیرترین زبانشناس جهان هم به این نچیر رسیدن یه سری ریشه‌ای سامواریایی یکیه اصلاً وارداتی نیست نمیتون اسم کنیم واژه وارد تو واسش بزنیم بیاریم مثلا ما واژه‌ای هست که من خودم صحبت کردم با آقای دکتر مشی زادم گفتن ایشون هم تایید کردن مثلا ببینید ما همه یه مثلا سوفالو و رو خشت خود خشت یعنی از ریشه ایست به معنی چیزی که در پخته شده همین اینو شما می‌بینید در غرب ایران مثلا در کردی و لوری آگور یعنی آتیش. باجلم حتی از این گرفته. بله الان میان میسن که آگور از اکدی وارد فارسی باستان شده. در صورتی که من خیلی میتونم با درصد بالا بگم این اشتباهه. این از غرب ایران رفته به سمت اکدی. یعنی با لحجه مردم غرب ایران آگور یعنی چیزی که در آتیش پخته شده از اونجا رفته تو اکدی. اینا میتونه وارداتی باشه. علت تو الان مثلا تو گویش ما مردم آذربایجان آجور میگیم کرپیش پیش یعنی به پیشیرمه یعنی پختن میگن دقیقاً مثلا مشخصه که این هم از پخته شدن گرفته شده مثلا شما به ریشه پک میگیرن ریشه پختن و ریشه هندورپایی پک میگیرن که در واسه پچم اومدیم که ریشه هندورپایی کیک باشه در واسه چه خوششون میده بعد خدمت شما راستش که شما الان میرید در روسی حتی و واسه از زبان اسلاوی دیگه هنوز به کورا ریشه پک میگیرن یعنی چیزی هم. که میپزونه ایه. یک ماده درون خودش این نشون میده که ما با سامی ها بسیار ارتباط داشتیم از قدیم چی از هم جلو شدیم اینو دیگه واژنتیک بگه باید. ولی زبان شاسی داره علائمی نشون میده که اینا 100 درصد با هم یه جایی و ارتباط, ارتباط داشتن ولی علم ژنتیک و علم باستان شناسی میتونه به نظر بنده جواب بده باید جواب بعد بده ولی خب اون دیگه تحقیقات بعدی میطلبه بعد خدمت شما که ما داریم مثلا میبینیم که طور که خدمتتون واسه این سری دستبندی کردن از زبان‌های هند اروپایی و اروپاییو گفتن خب زبان هند و اروپایی مثلا یه واژه‌هایی داره که ما میتونیم حتی تو ترکی پیدا کنیم بعد نظریه توران بسیار ق... شدت پیدا کرد که بپذیرن که واقعا توران وجود داشته ثابت شد که این ریشه روش... نژاد زرد نیست چرا چون بعد مثلا بعد در دیگر زبان‌های نژاد زرد هم می بود مثلا ما می‌گیم ریشه در سامی هست مثلا در اکدی هست تا میره مثلا تا آفریقا مثلا هنوز ما ریشه اشو پیدا می‌کنیم پس نمی‌تونه حسن همجواری بوده باشه وارزاتی با باشه پس این ریشه کهن مشترکه بله بله پس ما در ترکی سی از واژه آریایی میبینیم خیلی جالبه اینا همون طور واژه‌ی تورانی هستش که وارد زبان ترکی شده و خیلی خنده‌داره همین الان پانتورکو می안ون علی خود ما استفاده می‌کنن در صورتی که قزما شاه اینو ثابت کرده خدای شکر که به نفع ما که این واژه هم ریشه هندورپایی یا هم آریایی داره اینا مثلا 1400 پیش از میلاد ما تصورونه که اینا از ما جلوشونند و سمت شرق سمت تو خراسان فعلی رفتن اونجا پیش رفتن این به من ثابت کرد که بله همچیزی چیزی بوده همچین واژه‌ای داره تو زمان نژال زرد خودش نشون ویژه ترکی داره خودش نشون میده و اینکه ما تعالی میگفتیم اینا اصول است به هیچ اموال پذیرفتنی دیگه نیست و این شمال شرق من هنوز روش پایبندم تا آخر برنامه هم روش پایبند خواهم بود بلد. حالا <تصفيق> بس خواهیم که داریم مورد هنوز بحثم بلده. تمامی بلده. بلده. دیگه شما بحث بحثم تمامه ولی وقت ندارم شاید دیگه وقت ندارید شما وقتتون تمام شد نشست بزاست. بعدی حالا ادامه میده ولی خب بلده. بحث هایی که کردیم فکر جالب بود بالاخره برای تنویر افکار شنوندگان گرامی لازم بودیم این اتفاق جناب آقای فیروزی در خدمت شما هستیم شما دکتر مویبی من ارزی میتونم بفرما بفرمایید اجازه فیروزی بفرم. آقای فیروزی الان با سخن گفت من میخواستم تشکر کنم از آقای کریمی دیدین که فرمودن که این استادایی که نام بردن الان فهمیدن یه رابطه ای هست بله وا گزارش کردن به ژنتیک تا شاید بتونه پاسخ بده آ باستان شاید بتونه پاسخ بده اما رابطه رو دیدن در کردن نشانه هاش هست من میخواستم عرض کنم که مثل اون که های فیروزی گفتن الحاقاتی به 670 شده گفتم یاد داشت کن کمک فرضیه من میاد فرمود تا کل میام خب یک سند زبانشناسی بود در باره اون فرضیه که من در آینده میخواهم مطرح کنم بل. و من همینجا نوید بدم که استورشناسی جلو جلو پاسخ این چیز رو داده این پیوند رو داده از ژنتیک هم میتونه کاملش کنه باستان‌شناسی هم کامنت کنه این هم باز نکته خوبی بود که آدم. حتی من بلکه اون فرماشه دهکریمی رو چون زبان شناسی تخصص ندارم نمیدونستم اما حالا می‌بینم که این داره قوام می‌گیره این نظریه یعنی حتی شاهد زبان شناسی هم داره ببخش باش جناب آقای فیروز لخدمت شما هستم درود بر شما و شنوندگان گرامی من در بخش دوم صحبتام می‌خوام به موضوع دیگه از جمشید به بعد اشاره کنم بله. در این بخش میخوام به یه نکته راجع به گاه شماری و گاهنگاری فلات ایران از در باستان شناسی بله خیلی کمک میکنه تقریبا اشاره کنم. کنم به صورت خیلی خلاصه و بعد بحث همون که این شخصیت ها میتونن شاه هم بوده باشن و پهلوان بوده باشن ببینید در فلات ایران بحث گاهنگاری یا کرونولوژی که باستان شناسی رای داده مادی قدیمی ترین نکته ای که سکونت یک جانشین بشری داشته باشیم دیگه آخریش تپ آسیاب هست هشت هزار پیش از میلاد یعنی ده هزار ساله پیش تپیه تپ آسیاب تپ آسیاب در آبریز کرخه هست یعنی شما میخوان به نوسنگی قدیم و جلید به این گنجدره تپ آسیاب به این صورت کرخه نا... توی خوزستان تقریبا نه این آسیاب این هست کرماشه است ولی به طور کلی اون محدوده‌ی گنجدره و تپه آسیاب اینا در یک بسته بررسی میشن. آبزکرخره من اشتباه گفتم. بحث این هستش که این بر 8000 سال پیش میلاد هستش. ببینید اون گوبرکی تپهی در ترکیه ای امروزی اینا 10000 سالشه. اینا 10000 سالشه. حالا 10000 سال پیش از میلاده هزار... اون 10000 سال پیش از میلاده این 10000 سال پیش این بازه 12000 10000 سال پیش دیگه ما چیزهای داریم که اینا شاخص‌های سکونت در منطقه هستن. درست حالا بحث من چیه میام که ببینید سکونت یک جانشین فلات ایران 10000 سالشه خب اگر ما بخوایم خیلی قبلتر از این بریم که بشرانم ریسندگی میکره بافندگی میکرده فلان پاتچه بمانین فلان چیز دوره بوده هزار سال پیش این نیست هم از نظر منطق تکامل بشر هم از نظر باستان شناسی اما آن قبول دارم که یک سری از این کردارهایی که نسبت دادن به اینها معبود به دورانی هستند. که بعد دیگه اینا جمع شده. ولی ما ما مثلا 8000 سال پیش از میلاد تقریبا نداریم. یعنی بیاین جای مختلفا بگردید مثلا در دک... نیست. نه دیگه 5200 پیش از میلاد 5500 پیش از میلاد اینا وجود داره. حالا بحث من اینه که ببینید این اسامی در خود اوستا به چه صورت اومدن؟ در خود که مجموعه اوستا ببینید دیگه قدیمی‌تر ما هستن. الان دیگه بحث گاتام نیست. هوشنگ شهریاری که آرزوی بزرگترین شهریار شدن داره. درسته یعنی کاملا یک پادشاه یه آدم پادشاهی میخواد جاه طلبی جاه یعنی خصوصیات فردی خصوصیت اسطوری نیست یه فرمانرواست جمشید خوبرمه خوبرمه صفت داره واسفالش هم میتونه ای باشه در پای کوه هوکرگ اشتباه نکن تلفظش اون آرزوی بزرگتن شهریار شدن رو داره دوباره اجیدهاک ای شده سپوزه‌ی ای سکل ایجنم شش چشمی این انقد منفور بوده و هر چی بوده که اصلا این دیگه الان اینجا انسان این انسان دیگه نیست اینجا ولی جانشینش فریدوم کسی که اژدهاک را میره نیایش میکنه اژدهاک را براندازی میکنه و دو دختر رو آزاد میکنه که ما برای شهرواز arnawazده شاهنامه رو داریم ابیسش خیلی سخته گرشاس به این دیگه پادشاهی پهلوانه در کرانه درایشه پیشینگه که این در بندهش هم اسم متأخرش است پیروزی بر گندروه در کرانه دریای پرکیزا به فراخ کرد و میخواد دوباره افراسیاب تورانی تباه کار در هنگ زیرزمینی خیش دستیابی به فر ایرانی آرزو آرزوی استورهی و ای باز یک فرده کاووس توانا این صفتشه آرزوی بزرگترین شهریار شدن و پیروزی بر دروندان و کویه و کرپ دوباره یه فردی سپهسپادشاه میخواد بعد دشمنش خسرو پهلوان های ایرانی و کننده کشور دوباره این یک فردی یک فرمان یک شخصيته اونجا پهلوانه آریزی بوده این شخصیده چیز شده شهریار شدن و گردونه هم داره گردونه داره چون سوار بر گردونه دنیایش میکنه بقیه سوار اسبن یا پای پیادن اونجا این, این سوار بر, بر, بر, بر, این بر, بر, سوار بر گردونه است یک شخص او... حرکت استوری نیست توس پهلوان جنگاور تندروسی خود و اسبش را بر پشت اسبش آرزو میکنه پیروزی بر بله. رقبایش با یک ضربه پیروزی بر پسران دلیل دودمان ویسه در گذرگاه فلان در بلندایی نکا و براندوی سرزمین های تورانی یعنی دقیقاً شما یک اویت تورانی دارید همونطور که زرتوش میگه فریان تورانی آدم چی هست بس ما هویت تورانی داریم از این آدم قدیمی و این با عنوان یک پهلوان یک شخصیت میخواد بر یک پسران یک دودمانی براندازد این حرکت اسوری نیست این همه وجود خارجی دارن این در دیاد ای دودیسم هست یک دیکنی... علما میخواد برای یک دودمانی برازه اصلا مثل هم... حمله جرجوش که به دودمان صدام حسین رو برند است پسران دلیل دودمان ویسه این در شاهنامه این هست پیروزی خوب... بر توس و برانداززی سرزمین ها ایرانی ها. خوب... اکسشو حالا عکسش رو میخواد حالا هم دلار دولایه... که شیرانی داشته فریدون این دیگه بعدا اسمش از می رفته وگرنه اگر ما مضنیتون یه اسطوره می‌ساختی اسم پا او کشیران کاردان در دوران فریدون این آرزو میکرده به خونش برسه چون این در حالت اسطوره توصیف شده این رو هوا پرتاب شده و رو هوا پرواز میکنه و کشتی و عجیب است تو اون موقع زم... این یه کش... م... کشیران ماهری بوده به یک اتفاقی افتاده به صورت اسطوره این یکی اینو پرتش که رو آسمون زمین نمیاد بله و حالا دعا می‌کنه که آقا من بیام زمین میخوام زمین بیام من مطمئنم که اگه این فرد کاش به شاهنامه می‌رسیدن از اینم اسطوره می‌ساختن یعنی این مثلا نمالی چیزی می‌شد این در واقع اسنادی که این رو معرفی میکنه دست از دست فردوسی نافتاده و خب یک شخصی با اسم سخت من اسمو نمیخونم از دودمان نوزر خب پس نوزر شخصی است که دودمانی دودمان داره دودمان داره توالی از کرانه یک رود که بعد از این رودم به صورت اسطوره عبور میکنه رود به دو شق تقسیم میشه از, از بینش عبور میکنه مثلا معجزه حضرت موسی دقیقاً باز یک شخصی است که حالا یک اتفاق اسطوره بهش نسبت دادن درسته و بازم هست حالا ببینید این فکر نکنین که این اتفاقات خویسالی و نمیدونم بارون اینا فقط تو متون ایرانیست نه من میخوام این متن مصری رو براتون بگم که از یک فرعون هست و این فرعون وجود خارجی داره و اتفاقات عجیب براش میفته ببینید؟ خوب اسم این, فر... این فرعون در واقع معروف نخستین فرعون از نخستین دودمان فراعنه مصر که امروز اثبات رو مثل منس. منس این در سنده در واقع اوزبیوس چون چندین سند اصلا در سند اوزبیوس گفته شده که اینو گسیل ارتش کرده به فرای مصر های مصر ما امروز می دونیم این نکرده منس رفته همون داخل سرزمینی مصر جنگ های داخلی کرده ولی فرای نرفته بعد از این اسطور بسسن مک در اثر حمله کسریابی امروز میگه اسبا آبی کوشتهش نمیگه نسبه آبی یک بادی بوده یک بورانی بوده یک کار اسوری بوده یا دورعی بوده اسباب این آقا رو کشته. فرعون سوم از همون ما. رویداد یک خوش‌سالی. خب، یه خوشسالی به دورش رخ داره. خیلی هم تو خاطرات میگی خوش‌سالی مونده در تاریخ مصر. امروزن خوش‌سالی میدوننش. چیز اسطوره‌ای نمیدوننش. و از این از روز تا اون زلزله شکاف در زمین، از این داستان ها ما زیاد داریم در اینا، ولی امروز اینا رویداد زمینی است و نسبت نمیدونم به جایی. چون اینا رو پیدا میکنن و تاریخ‌نویسی میکنن بر اساس اینا. اینو عرض کردم که من در کنار این اینکه یک سری از کارها رو اسوره ای میدونم اما اینا رو همشون شخصیت های تاریخی و پیش از تاریخی فلات ایران میدونم حالا من میخوام از دوران فریدن دیگه بیام دوره جمشید کاری ندارم از میکنم ببین حالا خب شما از دوره جمشید میاییم بیرون در مورد زهاک میخوایم به عنوان یک از شما بپرسیم زهاک رو خب فردوسی توی گفته هاش یه اسمی از بیت مقدس میاره اگه تا اونجا که میدونم آیا منظور همین فلسطین فعلی از جای دیگه از شما توی تحقیقاتتون به جایی رسیدین در این ماوره ببینید در متون پهلوی این از گنگدش خوخت خارج میشه درسته گنگدش خوختو در همین متون پهلوی منطبق خیابان به اورشلیم درسته و به ریشش اونجاست که این میگفتن پادشاه آن سوی فرات هست و این باید از سرزمین ان ایرانی بلندش بیاد کمان که قبلارش یا بدترش هم گفتن اگر بابل بوده چون یک سرزمین اهریمنی غیر ایرانی بود و این بنظر من حالت است چون هم همین متون متاخر ما متون متأخر داریم که میگن همین آقای زهاک خواهرزاده جمشیده اما ای ما اینم موازاتش داریم تو کدوم سندین اومده فکر کنم ابن بلخی باشه فکر بله. کنم الان خاطرم ببین حتی تبری انقدر شعور داشت که میگفتش که این قضیه رشت دمار بر دوش این بابا آقای زهاک نمیتونه واقعی, واقعی باشه این اصلا نمیتونه باشه نوشته که میگویند در جاهایی ثبت شده است که این دو قده گوشتی بود یعنی حتی انسان 1200 سال پیش به این رسیده بود که این یارو نه هپروت نه افسان است نه واقعا مارو چیزش بوده داستان بوده ولی واقعا ماروش نه واقعا دو قده گوشتی امروز ممکن سرطان خوش رو خوشخیم باشه میخواسته سرعتانی بشه ما امروز اینو نمی‌تون درک کنیم این حرفو ای یعنی تبری اون موقع به این رسیده بود که این اونم از اسنار اصلا نشون میده قبل از طبری هم به این رسیده بودن که این آدم با اون چهره کری بله حکومت می کنه یه طبیعی هست یعنی آدم... یک انسانه اینا نماد خاصی نیست ها بالاخره شما پس شما قبول داری که از بیت المقدس بوده یا از... نه من قبول ندارم چون رامیش میگه این از سرزمین کویرینتا اومده ما امروز نمیدونیم کجاست یک نظریه این کوه کرنده ما نمیدونیم یک نظر عوستاشناس نمیدونم کیاکی گفته فقط محتار بها رو گفته نمیدونم که این ممکه کوه کرم باشه در آبانیش میگه بابل ما نمیدونیم از کجا به کجا آمده ولی ما حدود جمشید رو میدونیم دیگه گفت ارز کردم از ایران ویچ بوده چون در ایران ویچ میگیره میگیره تا در مراحل آخر میگن به فارس هم رسید جمشید, جمشید. منطقه فارس هم رسید یعنی این حوزه فرهنگی یا قلمروی سیاسی ناغا به هر از ایران ویش در فرارود بوده تا فارس خودودا یعنی از خراسان تا همین استان کسی فارس بخواد علیش توقیان کنه و از همین حدود بلندشه یه خود مرزای غربیش کرنت هست در کرمانشاه هست چون این میاد از مناطقی مثل قومسو داره کوه پدشکو وارگرد داره سقطو از این سمت داره و بخواد وسچه به مناطق فارس بعد بیاد از منطقه ری عبور کنه و بیاد پایین ما امروز دقیقا هم داریم جمع کرا بله دقیقاً, دقیقا منصوب منسوب هست این مناطق اینجا یه هلال تشکیل میشه قربش کرند هست ممکنه از اینجا اومده باشه همه اینا منسوب به جمشید هستن درست یا غلط ما نمیدونیم این باستان شناسی میخواد این کتیبه میخواد من. ولی داده های ما به این حد و کلیت این این آدم یه حقیقی بوده در دوران پیش از تاریخ ایران که ای شده بله. بعد از اون هست که فریدون هست من میخوام در صحبت بعدیم حالا دیگه این نقطه شروع کنم بله. خیلی این موسکر. فریدون بله. در چه حوزه‌ای ای و شکاره خیلی موسکره جناب آقای ایران مهر گرامی فرماشتو دو تا دوست گرامی رو شنیدیم در قسمت گذشته در پایان قسمت گذشته یک مباحث رو در مورد جایگاه اهریمن و مهریش مطرح کردید ظاهرا اون ناقص موند و فکر کنم ادامه اون مباحث رو پیگیری کنیم میتونیم به واسه ما کمک بکنیم خواهش می‌کنم چقدر زمان هست حدوداً دوازده دقیقه باشه درود بر شنوندگان گرامی برنامه من می‌خواستم عرض کنم که رد کردن به طور کلی خاستگاه سیبریایی ایرانیان کار ساده ایه فقط تنها یک مؤلفه نیاز داره زمان درست یعنی اگه صدای امید زمان کافی بده اینقدر اینجا سند خونده میشه حالا اگه خانم دکتر احسانی هم بیان که دست کم میشه حالا اینکه ایران وش کجا بوده اون یه بحثه اما خاستگاه سیبریایی ایرانیان رو میشه رد کرد اینکه میگم سیبریایی دلیل داره ببینیم دست های شمال سخت رو نقشه نگاه کنین جاش مشخصه دیگه مشخص؟ میره تو قزاقستان میشه اورال شرقی میشه سیبری جنوبی اینو خاصگاه میدونن رد کردنش فقط زمان لازم داره همین در حوزه علوم انسانی ما داریم بحث میکنیم من خواهش میکنم دوستان چون حوزه اول حوزه علوم انسانیه من خواهش میکنم دوستان از بحثای نظری گریزون نباشن اینکه یه رو بخونی قطش کنی که چه چیزی نمیفهمی ووزه ووزه علوم نظریه بله. باید مباحثه بشه دوستان از بسای نظری خودشون فارق ندونن گاهی دوستان مثلا گاهی آوی فیروزی ببینم میگن که نیازی نیست که دیگه خیلی بس کنیم ول کنیم بریم یک بس دیگه میدونین اونشون عجله دارن کنن نه یک دلیل صحوی داره عمدی هم نیست من الان دلیل سهویشو که ناخودآگاه یک کسی مثل دوستان میتونه باشه رو عرض میکنم بله اینه که ببینین تقریبا بالای 95 درصد کسانی که دستی بر این آتش تاریخ و تاریخ ایران و بله. اصالت دارن، ایرانویج رو در آسیه میانه نمی دونن، خب؟ درست و بله. آدم با خودش میگه مگه ما بیماریم بیخودی خودی بس کنیم سر چیزی که 95 درصد مردم همه قبولش دارن بیایم بس کنیم، یه دفعه یه گوشش بزنه بیرون نباشه، همه چی خراب بشه. دقیقاً. خب اساساً چه, چه کاری بس کنیم؟ میدونید این دلیل سهوی ذهنیه ها. اینکه هی میگن ولش کنیم در صورتی که خدا بیامروز استاد احمد تفظولی یک ترجمه پهلوی کرده بود بعد 20 سال یک مقاله دربارش نوشه بله گله کرد گفت من 20 سال یک متن پهلوی رو تصحیح کردم ترجمه کردم نوشتم یه نفر یه بهش نوشه دقیقاً گله کرده بود بقیقه. حالا دوستان نظری دارن حالا چه اشکالی داره به چالش کشیده بشه اینا که اینقدر مطمئنن سند دارن بذارین چهار تا پرسش هم دربارش بشه به چالش کشیده بشه, بشه. اشکالی اینکه ترس نداره که بذارین پرسش ما در نظری دوستان ما بعدن بکنیم ببینیم من بحثم ها اینطوری آغاز میکنم که همینطور که گفتم اینا ایران ویژ رو در دشت های شمال سقد میدونن درست دشت های شمال سقد امروز نگاه کنین کشور قزاقستانه. این نقشه هست دیگه بله دقیقه میشه اورال شرقی سیبری جنوبی ما در همه اسنادمون من میدونیم و اینو دیگه هیچ کس منکرش نیست که ایران ویژ وارث خونی رست بله دقیقه و بعد من سندش رو میخونم که خانم دکترم یه بار خوندن خونی راست دقیقاً به اندازه شش کشور پیرامونیشه خودش به تنهایی به اندازه شش کشور پیرامونیشه ویددفش و فراددفش و برو برشتی و برو و ارزه و سبب اون شش تا رو هم خونی رست به اندازه همه اونست. پن براین جای کوچیکی نیست ایرانویزی که وارث خونی راست نمیتونه جای کوچیکی باشه اما میبینیم که دوستان اونا یه ناحیه‌یتی یه شهرستان میدونن که در شمال سوق در قرار گرفته و حتی معتقد نیستن که سوق دو مرو و بلخ و اینا خودشون تو ایران وژن یعنی میگن یک جایی بودن که مردم ایرانوژنو ترک کردن رسیدن به سوق بعد اومدن به مرو بعد اومدن به بلخ یعنی ایرانوژنو همش همچی جایی تصور میکنن حالا در این حال ما بحثمون رو با این دیدگاه آغاز میکنیم من کردم که در تمام اصولامو داریم دوستانم نمیتونم منکرش بشن چون دیگه همه سنده همین دون میگن جایگاه اهریمن در آپاختره یا در شمال حالا میخوایم ببینیم از نظر ایرانی ها شمال کجا بوده شمال میتونه خوده قطب شمالم باشه هر جایی باشه نشسته پیش دیدیم واقعا به خاطر یه فرضیه آدم گاهی یه کارایم ناچاره بکنه دیگه حتی کار به بزک اهریمنم کشید دیگه مثلا اینی که ما بیایم بگیم اهریمن نبوده انگرامینو بوده مشکلش کنیم که رو حل نمیکنه که خب ما میدونیم که انگره مینو، در برابر سپنتاس، سپنتا مینو. یعنی خوب انگره مینو هم میشه بد دیگه. بله. حالا ما واجه پله ویشو بگیم که چیزی درست نمیشه که. ببینم من نمیدونم واقعا باید اینجا بشینیم صحبت کنیم که آخری مثلا یه موجود بدیه یا نه دیگه. حالا می‌ذکری که میدیم بدیهیاتش هم بگیم دیگه. مینوی خرد پرسش 5 بله. مینوی خرداد پاسخ میده که زمینی آزرده تر است. که دوزخ در آن ساخته شده است. دانا وقتی از مینی خیط میپرسه در پرسش 5 این جور پاسخ میده میگه زمینی آزورده تر است که دوزخ در آن ساخته شده است. خیلی روشنه دیگه جایی که از نظر ایرانی یا دوزخ توش ساخته شده یعنی جای آزر... میگه آزورده ترین جا کجاست ناشاد ترین کجاست جا... حالا ما باید ببینیم دو از نظر ایرانیا کجا ساخته شده؟ خدمتون بگم که وقتی ما میگیم که از رامش بخش نبودن صحبت می کنیم، جایی که رامش بخش نیست آزورده دیگه. بندهش من یک رو میخونم. میگه که... حالا ببینیم ایرانویج چی شکلی بوده. ایرانویج مشخصه داره. بندهش بخش 16 میگه به دین گوید که اگر من نمی آفریدم مینوی بوم و سرزمین را همه مردم به ایرانویج میشدند. به سبب خوشی آنجا. پس یه چیز میفهمیم. جایی که ایرانیا ها بهش میگفتند دوزخ ببینیم کجا بوده اگر مشخصات و مختصاتی که درباره باره ایرانویج میگیم دی... می همونجا باشه که به هم نمیخوره دیگه مینوی خرد داره میگه که آزرده تر از جایی که دوزخ رو ساختن نیست بندهش داره میگه که اگر من نمی آفریدم مینوی بوم و سرزمین را همه مردم به ایرانویج میشدن به سبب خوشی آنجا پس ببینیم مختصات هر دوشون رو پیدا میکنیم ببینیم اینا کجاست؟ در حالا اهریمن چون اهریمنو گفتن حالا خیلی هم چیزی بدی نیست یار ارمزده مینوی پرسش شش گام چهارم شخص بدکار دیگه چهارمی گامش به تاریک ترین دوزخ می رسد او را به نزدیکی احرمن بدکار می‌برند و اهرمن و دیوان او را افسوس و مسخره کنند که تو را از ارمزد و امشاسپندان و بوی خوشبوی خورم چه شکایت و گله بود که به یاد دیدار ما و دوزخ تاریخ افتادی دنبالش بعد یک داستانیه که اورمزد یک پیمانی با اهریمن می‌بنده حالا اونو بد سر جای خودش می‌گیم هر بعد میگه هر نیکی و بدی که به مردمان و آفریدگان دیگر میرسد از هفتان اهریمن است که بعد این هفتان رو میگیم چیه جای دیگه در پرسش نه میگه که دانا از منوی خرد میپرسد که اهریمن بدکار و دیوان و فرزندانش میتونم با اورمز و امشاسپندان پندان آشتی داشته باشن مینوی خرد میگه به هیچ وجه نمیتوانن چه احرمند گفتار دروغ بدندی شد و کارش خشم و کین و قهر است یعنی زیاد نیست لازم نیست ما توضیح بدیم دیگه دوزخم جای بدیه که میگن مردم هر کسی اگه گناهش بیشتر شود راهش به دوزخم احریمند از آغاز سه هزاره دومه که به مرز جهان روشنایی میاد یعنی ما میفهمیم که تو دوازه هزاره از آغاز سه هزاره دوامه که یخ بندان آغاز میشه. یعنی این دوازه هزاره اینجوری تعریف شده. از یک زمان آغاز میشه سه هزار سال پیش از یخ بندانه بعد اهریمن میاد. حالا اینجا اهریمن میاد. در باری هزاره که ایرانیه یعنی یک جایی تو بندهش اومده من اینو ترجمه میدم نشسته آینده بگم. ما گفتیم پس اپاختر جایگاه جای سردیه. بنابراین از اون همیشه فراری بودم و به رو به سوی نیمروز یا جنوب می اومدند. دربهای دوزخ کجاست؟ در مینوی خرد، ولی که جایگاه دربهای دوزخ رو بتونیم پیدا کنیم، چند تا نشانی رو باید بگردیم. ببینید، پرسش 61 بند 13 ای داره. اینجا توی تعلیقاتش دکتر استاد تفضلی آورده که درباره کندج میگه. که خسرو از آن دژ خواست که به زمین فرود آید و کنگدج در ناحیه خراسان در جایی به نام سیاوشگرد در مرز ایران وچ مستقر شد کنگدش همون جایی که در واقع بسیار معتقدن که زه حاکم از اونجا اومده نه نه نه این فرم و گنجشخوخت، اون گنجشخوخت آره. این کنجشخات. اون... آره، اون در باخته. از جافدان. یه سر از جافدان ها تو اونجا هستن که این زمان از ای اون زمان, زمان سیاوش کرده. که خوشش ازش خاص مستقر بشه. ببینیم کجا مسلکار شد؟ در ناهی خراسان بله در جایی به نام سیاوشگر. در مرز ایران و جه شد. یعنی حالا بعد ببینیم خراسان تو ایران و بیرون ایران و جه. دقیقا مشخص. یعنی الان میخواین شما به ما بگین خراسان شمال صورته. چون با تو ایرانویج باشه دیگه من. یا نه این منظورش یه که آخر خراسان و اول ایرانویج حالا اینو ما مشخصش میکنیم من یه بخش دیگه ایش رو میخونم بعد میریم سراغ و بندهش ببینید میگه که در پرسی 61 مینوی خلط پاسخ میده که کنگدش در سوی مشرق نزدیک دریاچه صدویز گمارده شده است در مرز ایرانویج خب اینا همه نشانه های دکتور داشته باشید این کنگدش کنار یه دریاچه است. کنار دریاچه کیانسه بنابر روایت بندهش دریاچه کیانسه در سیستان قرار دارد ممنون دریاچه هامون میتونه باشه بله همونه همون. بعد میگه این شور شد و کم آب شد و حالا جالبه نگاه کنین درباره اون رودهایی که ما نزدیک کنگدج داریم میگه بنابر روایت همین کتاب افراسیاب هزار چشمه آب و کوچک و بزرگ از جمله رود هیرمند و وادینی و شش رودخانه قابل کشتیرانی دیگر مال اون ها را که به این دریاچه میریخ از میان برد و مردمان رو در جای آنها مستقر کرد خب پس ما می‌بینیم رود قابل کشتیرانی داره چندین رود قابل کشتیرانی داره که به هامون میریسه کیانسا کوجاس سیستان اونجاست خراسانه و مرز ایران یعنی مرز اتفاقا... شمالی یا جنوبی یا شرقی یا غربی؟ یعنی رسیده به مرز خاوری ایران بچه. مرز شرقی ایران ویجه. مرز شرقی ایران بچه رسیده. دریایی هامون کندج تو ایران در مرز خراسان کندج در کنار هامون در ایران واقع شده. این اینا اسناد دارین میخونیم. یه دقیقه. یعنی شما ایرانوژو به سمت جنوبی‌ترم آوردین. آقا ایرانوژ وارث خونی رسه. خونی رسه به تنهایی اندازی شش کشور. خونی رسه یه شهرستان نیست. یه جایی نیست که ولش کنم برن جای دیگه. ایرانوژ ناحیه خیلی گسترده ایه. من یه نقشه ای توی این همین بخش ایرانوژ 27 از صدای امید خواستم بارگزاری کنه برم ببینن. دیدگاه ما یک مربع آبیه. دیدگاه دوستان یک مربع قرمز. با هم مقایسش کنن. که نظر ما ایرانوژ چقاده و کجاست؟ از نظر دوستان ایرانوژ چقاده و کجاست؟ ایرانیس خیلی خونی راست آقا خونی راست خیلی بزرگه یک ناحیت نیست یعنی میتونیم بگیم که خواندرس کل قلمرو میانی هستش حالا بعداً گسترش پیدا میکنه دیگه از خونی راست میرن به شش کشور و این شش کشور اطراف تشکیل میشه که ما او رو تقریبا قلمرو میانی میدونیم خدمتون بگم که برای که ابروشو درست کنیم نبات بزنیم چشمشو کور کنیم اینا نمیدونم الان شما میتونیم بگین کنگدش کنار هامون نیست می‌تونید بگین هامون باشه. نیست توی ایران وچ؟ میشه با این اسناد با چی می‌خواید رد کنید آخه؟ یا باید جای هامون رو تغییر بدین یا بجا باید بگین بی بیخودی گفتن یا باید بگین اینا اسنادش مثلا علکیه حالا بعد درباره اصالت اینام تو جلسه آینده صحبت می‌گیم. ببینید من پایان این مقاله ای بله یکی از دوستان نوشته بودن که ایشون هم همین درد دل داشتن. در باورها و متون ایرانی شمال یا اپاختر پایگاه اهریمن است. جایگاه دیوان و نابکاران و درب ورود به دوزه هست ایرانیانی که همواره به سرزمین مادری و خواستگاه خود و, خود و وطن خود اشق و خاطری تاریخی آن را حفظ کردند اگر سرزمین های شمالی خواستگاه آنان بود درباره آن این چنین سخن نمی راندن. خدمتون بگم که اینا رو چون زمان کم بود من خیلی تراش کردم جمع و جور بگم درباره باره کنگش بعدا توضیح میدیم. و جاشم مشخص شد کسی نمیتونه بگه که کنگدش کنار درشی کیانسه نیست دا جای درش کیانسه هم نمیشه تغییر داد در مرز ایران وجه بنابراین ایران وجه اگه در شمال سوخت باشه ما باید چند تا کتاب تازه بینیسیم جای اینا همه رو عوض کنیم حتی من درباره باره هم در نشست آینده توضیح میدم که ببینیم سدویس کجاست و یعنی چی بله خیلی متشکرم جناباقا ایران مهر جناباقا ایران مهر بنده ارز بکنم که شما هم حتما با بنده هم عقیده هستید که 90 و 95 درصد محققین و پژوهشگران تاریخ با این نظر شما مخالف هستند و در واقع ایران ویج رو در همون مکان فراروش میدونن به میونخره چرنده یک مقاله بنویسن بگم میونخره چرنده دقیقاً بله بزن. اگه جلوه دارم بله هیچ ارادی هم نداره که یک فرد بیاد بر اساس پژوهش های خودش اینها رو رد بکنه و این اصلا به هیچ وجه انکار خدا و ارتداد و کفر هم نیستش هیچ ارادی هم در ارفای گذشتگان و اندیشمندان و پژوهشگران تاریخ گذشته هرگز وحی وحی منزل و قران نیست که نشه تغییرش داد بر اساس پژوهش های تاریخی رسیدن و میتونیم ببینیم که آقا بسم الله الرحمن برنامه شما اشتباه کردید ایران بیج این بوده اونی که شما میگید نبوده شنرمندگانی گرامی خیلی متشکلیم از حسله ای که برای گوش دادن به این برنامه به خرج دادید قسمت 27 برنامه رو به پایان هسته شما رو تا آغاز قسمت 28 برنامه به خداوند متعال میسپاریم خدا آرون نگه تا